زاهد زاهر پرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست در طریقت هر چه پیش سالکایت خیر اوست در سرات مستقیم ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخ نماید بیده خواهی ارسک شطرنجرندان را مجال شاخ نیست چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست این چه استقناست یا وین چه قادر حکمت است کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب کن در این طغرا نشان اسبتا لله نیست هر که خواهد گو بیاو و هر چه خواهد گو بگو کبر و ناز و حاجب و دروان بدین درگاه نیست بر در میخانه رفتن کار یک یکرنگان بود خود فروشان را به کوی میفروشان را نیست هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است ورنه لطف شیخ و زاهد گاه است و گاه نیست حافظ در برصدر ننشیند ز عالمی مشربیست عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نی